کتاب افسانه های مردم ایران زمین در فرهنگ مردم درتوجان گردآورنده فرخنده پیشداد فر ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده محمد علوی سلام و عرض ادب خدمت همه شنونده های محترم کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستیم با یک داستان از کتاب افسانه های مردم ایران زمین در فرهنگ مردم درتوجان درتوجان در توجان در تو نام یک آبادی در پنجاه کیلومتری شرق بندرباس است. و اما این داستان بیبیگل نسو بیبیگل نسو مادر نداشت در عوض یک نامادری نامهربون اون رو بزرگ میکرد اون همه کارهای خونه را انجام میداد تا نامادریش راضی بشه اما همیشه اون نراضی بود دوست‌ها و دخترهای همسال اون هم خیلی اون رو دوست داشتن و همیشه حرفهای اون رو گوش می‌کردن روزی بیبی گلناسو با چند تا از دخترهای همسن خودش توی جنگل‌های حاشیه روستای خودشون رفتن تا هیزم برای پس خونه جمع کنن هنوز اونها برنگشته نگشته که قلقلی توی روستا راه افتاد و عده قارتگر برای قارتگری به طرف ده می اومدن. مردم از ترسشون هرچی داشتن جایی مخفی کردند و خودشون هم به جایی دوردست پناه گرفتن و فرصت نشد تا صبر کنن که دخترهای اونها که به جنگل رفتن برگردند ما درایی که دختراشون همراه بیبی بی گل نصور رفته بودن نون قماچی رو در اجاق زیر خاکستر گرم گذاشتن تا بپزه و برای دختراشون که از جنگل برمیگردند آماده باشه تا لااقل اونها گرسنه نمونن نون قماج خمیر گردی هست که درون خاکستر گرم میگذارن تا بپزه این اتفاق هر ساله ممکن بود توی چند نوبت در ده اتفاق بیفته و همه می که کجا مخفی بشن. بنابراین بیبی گلنسو و دوستاش هم می که پدران و مادرانشون به کجا رفتن. وقتی بیبی گلنسو و دوستاش از جنگل برگشتن روستا خلوت شده بود و هیچ از اونجا نبود. گرسنه نبودن و یادشون اومد که خاکسترهای اوجاق خونه رو بگردن. دیدن که بله براشون در اجاقها نون قماچ گرم پخته و آماده است و فقط بی بی گل نسو که مادر نداشت نونی هم توی اجاق براش نگذاشته بودن که بخوره البته دوستان اون نگذاشتن که اون گرسنه بمونه و از نونهای خودشون هم برای بیبی بی گل نسو آماده کردند. بعد از اینکه نون خوردند و سیر شدند گفتند که بیشتر از این نباید اینجا بمونیم و باید فرار کنیم و فوراً از اونجا رفتند اونها خسته بودن و هوا داشت تاریک میشد. توی راهشون یک ای رو پیدا کردند و رفتن که اونجا بمونند از غذا به چنگی درونج دورنج افتادند دورنج اسم یک موجود خیالی در فرهنگ مردم درتوجان است درونج از اونها پذیرایی کرد و غذای مفصلی هم به اونها داد اما بعدش اونها رو توی یه اتاق زندونی کرد تا شاخ بشن و بعد اونها رو بخوره دخترها حسابی ترسیده بودن و بیشتر از همه بیبی گلناسو بود که میترسید و از ترسشون نمیتونستان بخوابن اونا منتظر بودن که درونج خوابش ببره و فرار کنن درونج هم که در پی فرصتی بود تا بعضی از اونها رو قافل گیر کنه و بخوره بالاخره همه دخترها از شدت خستگی خوابشون برد ولی بیبی بی گل نسو یک انگشت دست خودش رو برید و نمک زد تا خوابش نبره درون منتظر بود همه بخوابند، مرتب سرکشی میکرد تا مطمئن بشه که همه خوابیدن آهسته میگفت چی خوابه فو چی بیداره؟ فورا بی بی نسو جواب داد که همه خوابیدن ولی بی, بی نسو بیداره درونج می چرا بیداری و خوابت نمیبره بره؟ بی, بی نسو توی جواب گفت سگا وق وق میکنن من خوابم نمیبره. بره رفت و تمام سگای اون محل رو دور کرد بعد از مدتی برگشت و دید که باز هم بیبی گلنسو بیداره. پرسید. چرا خوابت نمیبره؟ بیبی گلنسو گفت. باد زیاد برگای درخت رو تکون میده و خشخش میکنه. منم خوابم نمیبره. درونج رفت تمام درخت اون محل رو از ریشه در تا خشخش نکنه. بعد از ساعت ها برگشت. باز دید که بیبی گلنسو بیداره. پرسید. چرا دیگه خوابت نمیبره؟ بیبی بی گلنسو گفت وقتی تو خونه خودمون بودیم هفت قطار شطور بار نمک زیر سرمون بود حالا که نیست خوابم نمیبره هفت قطار شطور بار خیک روغن هفت قطار شطور بار تیق همه اینها بالای سرمون بود حالا که نیست خوابمون نمیبره دورنج همه اینا رو اماده کرد باز بالاخره بیبی گل نسو ای برای بیدار موندن داشت. خلاصه که نصف دارای با بابت تهیه این وسایلی که بیبی گل نسو میخواست هزینه شد و هم خیلی خسته شده بود و از پادر اومد و خوابش برد و به خواب سنگین و عمیقی فرو رفت. بیبی گلنسو با عجله دوستاش رو بیدار کرد و با سختی در به زندون رو باز کردن و همه اون چیزایی که درونج برای بیبی گلنسو خریده بود از نمک و تین قروقن همه رو بار و کردند و خودشون هم سوار شدن و مثل برق از اون محل گریختن صبح که درنج بیدار شد از از زندونیای خودش ندید می میدونست که تقصیر بیبی گل نسوه و تصمیم گرفت هر طور که شده اون رو به چنگ بیاره و حسابی مالی بده. با تلاش فراوون رد پای اونا رو گیر آورد و با سرعت میدوید تا خودش رو به اونها برسونه. در حالی که از شدت خستگی داشت ناامید میشد اما اونها رو پیدا کنه. بیبیگل نسو هم متوجه شد که درونج به اونها نزدیک شده فوراً دستور داد که تیغایی که همراه داشتن توی راه بپاشن تا درونج نتونه عبور کنه. فوراً تیغا رو روی زمین ریختند و مانعی برای عبور درست کردند درونج هم مدت ها طول کشید تا تونست در حالی که همه جای بدنش خونی و مالین شده بود از تیغا بگذره توی این فرصت که حرکت درونج کند شده بود دخترها فرصت پیدا کردن که دورتر برن ولی درونج با عجله می دوید و باره دیگه به اونها نزدیک شد که باز بیبی بی گل گفت تا نمک ها رو روی زمین بپاشند فورا نمک ها رو روی زمین ریختن. درونج وقتی توی نمک ها پا میگذاشت زخم های اون نمکی میشد و نمیتونست راه بره و بار دیگه فرصت برای بیبیگول گل و دوستاش پیدا شد بعد از چندین ساعت که درونج تونست با هزار زحمت از نمک ها رد بشه و خودش رو به نزدیکی اونا برسونه درونج میتونست که خوب به و چیزی نمونده بود که اونا رو بگیره که پیش خانواده های خودشون برگرشته بودند درونج میبایست که خودش رو توی خونه بیبیگل نسو برسونه بنابراین خودش رو به صورتی که گلوله نخ پشمی در آورد و در دسترس برادر بیبیگل نسو قرار داد بیبیگل نسو دونست که درونجه و از برادرش آمرانه خواست تا گلوله نخ پشمین رو که خیلی هم خوش رنگ بود بر نداره و اون رو دور بندازه هرچی که به برادرش گفت که اون یه گلوله نخه پشمی نیست یه درنجه و قصد داره که به اون آزار برسونه برادرش حرف اون رو گوش نکرد و گلوله نخه پشمی رو برداشت و به داخل خونه برد و جایی گذاشت وقتی که همه مردم خابیدن درونج نفس همه هیهونا و مردم رو توی شیشه کرد و چنار دست خودش گذاشت و بعد تیغ برداشت و افتاد به جون بیبی بی نسو هرچی که دلش میخواست بیبی گلنسو رو با تیغ میخراشید و نمک به اونی باشید هرچی که بیبی بی گل جیغ میزد و فریاد میکشید همه همچنان توی خواب بودن انگار مردن و کسی به داد بیبی بی نسو نمیرسید از غذا دست درنج به شیشه خورد و شکست و نفس همه موجودها آزاد شد سک ها آزاد شدن و بوی درنج رو فهمیدند برها و بقیه حیوانه هم بیدار شدن و, سر و صدا کردند و, و بعد همه آدم ها هم همه بیدار شدن درنج از ترس فوراً بیبی بی گل رو رها کرد و به سرعت فرار کرد پدر و نامادری بیبی بی گل نسو هم وقتی به بیبی بی گل نسو رسیدن که اون خیلی بد حال و بیرمق روی زمین افتاده بود. خب همراهان دوست داشتنی کانال هزار افسان، امیدوارم که از شنیدن این داستان خوشتون اومده باشه. سپاس از همه شما شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.